اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لی ایلا قریش به نام خداوند بخشنده بخشایشگر کیفر لشکر فیل سواران به خاطر این بود که قریش به این سرزمین مقدس الفت گیرند و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود. الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه و به خاطر این الفت به آن بازگردند. پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند الَّذی من جوع و آمنهم من خوف. همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت